الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و سلام علی اشرف الانبیاء و سید المسلین و آلی و اجمعین اما بعد آغاز دعوت تری رسول الله صلی الله علیه و سلم را داشتیم که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم دعوتش را آغاز میکنن با نه تریت تمام که کسی ندونه که چی کار میکنه و کجا میره اشاره کردیم حقیق <تصفيق> حقیق صورتی که علنی و بارد باشه نبود مثلا به فرز زیاد جلو کلبه و صدا بدن شما مشرکی تو این شرک کارتو تسرک می گرفتن و باشون حرف می زدن همونطور که در قصه عبدالله بن مسعود ما داشتیم عبدالله بن مسعود وقتی که سالاری می در صحرا و ملاقات می با رسول الله صلی الله علیه سلم و قصه اون بودو و دوشیدن رسول الله از اون بودی که شیر نداشت و آخرش هم عبدالله بن مسئول بهتی که این شنین معجزه را میبینه اسلام آرد بحث از ما بحثی که داشتیم هفته گذاشته بحث اسلام آوردن جنیان بود که جن مسلمان شدن یا قومنه این نسمعنه قرآنن عجبه که رفتن به قومشون گفتن که ما قرآنی شنیدیم قرآن خیلی عجیبی بود بحث دعوت جهری رو داشتیم که صراحة رسول الله دیگه دعوتش را جهارن و بالای تقایز داد و صدا ای قریف و ای بنی عبدالمناخ و ای بنی هاشم و همه, همه را ترا و صدا زد و اومدند و گفتند که من اگر خبر بدم که از پشت این کوه های میان باور نیکنید بفن آری بهت رسول الله صلی الله علیه و میفرماید که این ندیرون لکن بین یه عذاب شدید که من به شما بزدت میکنم از عذاب درناکی که روز قیامت خواهد اومد ابو لحب بلند میشه میگه تب بلک اما جمعت اجمعتنا اما الا لها و میگه ما را جمع نکردی مگر برای این چنین کار و از سوری تب بکیادا هم نازل میشه از اون مسائلی که حقیق خب داشته من این تذکر رو میدم که این قصه ها از ذهنتون نفره این هم تذکرات رو میدم که جا بیابتی این مسائل از اون مسائلی که این هفته حقیق گذشته اسلام عبردن ابوذر بود که. کوتاکش میدنن وقتی که نیاز اعلام میکنه وجلوب کعبه میایسته و میگه که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد محمد رسول الله دی کوتاه میوره بعد اشخاصی میون ازش اتفاق میکنه آخرین مسئله که داشتیم ما مسئله زماد بود با باد که کارش بود که کارش این بود که جن جن را کسی که جن زده بود جن از بدنش بیرون میکرد گفت که این پیانبری که میگی دیونه هست و جن زده شده بیا بیا می راهنمایی بکنید تا برام گوش بکنم این جنّات اثر بکنه. اون من الله صلی الله علیه و آله گفتم می خوام تو رو از این دعاهایی که یاد گرفتم رو از بیرون. رسول الله شروع میکنن این الحمد لله نحمده و نستعینه شروع میکنن و و تحت تاثیر واقع میشه. من میگه علیه علی کلماتک هؤلاء و این کلمات رو دوباره تکرار بکن. رسول دوباره تکرار میکنن میگه من قول ساحرین شنیدم قول نمیدونم کاهنی می شنیدم قول شعرا و شاعران رو همیشه شنیدم ولی هیچ حرف مثل این سخن‌ها نی اونجا حتی اسلامشام اعلام می‌کنه وقتی که امروز ما داریم بحث ازیت مشرکین است مشرکین چه برخورد کردن و بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد umat اسلام را اعلام کرد و گفت که باید شما مسلمان بشید و این کار شما شرک که ما داریم قصیه حمسر ابو همسر عبو اله هم میاد امو جمیل به مسجد و میبینه که رسول الله صلی الله علیه وسلم در اونجا آمدن که با رسول الله مراقب بکنند عبو بح ما میبینند میکنند که آیا شنیدی که رسولتان درباره ما چیزهایی میبیند آیا شنیده که سوره تببکی در عبیله به موتب نازل شده ابو بح سعی میکنه که از این قضیه فرار بکنه و میاد دشنا میده به رسول الله صلی الله علیه وسلم و در همون مسجد نمیتونه به رسول الله ببینه یعنی yani اومده رسول الله مناقض بکن رسول الله نشسته لیکن نمیتونه رسول الله ببینه با ابو بکر صوبت میکنه ابو بکرم سعی میکنه که منطرفش بکنه رسول الله از این همسر ابو الهب از یک جهت که میاد الله طراحه سن میخواد دشنا بده و فوش بده کسان دیگر بودم همینطور می اومدن به رسول الله صلی الله علیه و سلام الله صلی الله علیه و سلام وقتی که میشت دکته خوش میشد خوشحال میشدن الان اینجای تعجبه چون که میخواد مثل و الله صدا میزد کجاست این مزنن خدا لعنتش رو کنه الله با این شینی نامی صدا الله صلی الله كيف يصرف الله عني شتم قريش ولاعنه؟ بقول تعجب لم يكون إذا كخدا من لعنة قريش أذمن من فرستني كونه ميك يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم فوش بمذمما إذا لعنت بر مذمما يفرزان بمن محمد صلى الله عليه وسلم یه خدا من از من منترف میکردن فحششون لعنتشون همش میگفتن من مزمنم من مزمنم که نیستم من از از جملات‌هایی که هست در ازیات ها این های قولی که رسول الله میشنیدند لعنت و نفرین و دشنا جاهای هم با فعل خودشون وارد میشدن قصه هست از عبدالله بن مسعود که میلیت رسول الله صلی الله علیه و روزی اونا شدن جلو چادر نماز میکنن عده‌ای از با هم نشستی از جمله اونها عقبه ابن عبی معیز عقبه ابن, ابن عبی معیز دو تا رسول الله صلی اللہ علیه و سلم. اولش. رسول الله نه, نه شطور فلانی رو الله قرار بده وقتی که بدشون میاد از این که کسی بهشون بگه خدا را بفرستید بدشون میاد از این که گفت رسول ما فقط باید خدا پرستیده بشه از خدا دفا کردن جرمه این روزا هم مدام جرمه کسی بیاد از حق خدا دفاع بکنه بگه خدا پرست بشی جرمه رسول الله تعالی چیزی که میگفت خدا را بفرستید چیزی بهش نفسوشی بکسی بی میداد نه به کسی کتک میزنه چیزی به کسی نمیگفت خب این شخص بلند میشه تحریک میشه و کتی که تحریک که تحریکش میگه سامود رو روایت صحیحه مده ابو جهل تحریکش میکنه که تو نمیدونم کی مردی بلند بشه کی میتونه حالا فنام بکنه و این شخص تحریک میشه و بلند میشه و اون شکمبرو بلند میکنه میگسن بعض از اشقاهم بعدترین اونها بلند میشه و هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و آله در سجود جلو کعبه دارا نموت میونان شکمبرو بر میدادن و روی سر رسول الله پاکیش قرار میدادن میگه شروع کردن دهنده زدن و همگی تحت تحت قه خنده و به همدیگه دیگه مل می کردن و مکسر می کردن شخص میگه بلند شد دراف دوان دوان به فاطمه فاطمه را صدا زد ای فاطمه بیا که پدرت اذیت میکنن فاطمه رضی الله عنها بلند میشن اون را بر برمیدارن و شروع به فش دادن اونها میکنه بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازش تموم میشه میگه اللهم علیك ابو اللهم علیك ابو اللهم علیك ابو انیک خدا خودت دیگه با اینا کن دیگه من توانش ندارم دیگه خدا خودت میدونی برخوردش بعد دیگه اسماشونو ذکر میکنه اللهم عليك بعمر من هشام بن هشام وعتب بن ربيعه وشيب بن ربيعه والوليد بن و واميه بن خلف اسماشونو یاد میکنه تک به تک میگه خود صحابی عبد الله بن مسعود میگه میگه همه اینها رو میگه در اون گودالی که کندن در, در بعد دیگه میگه همه اینها رو در اون گودال دیدم وقتی که در جنگ بعد همه اینها کشته شدند اونها که نشستن قهقحه خنده زدن این سزای این دنیاشون بود حالا آخرت دیگه خدا میدونه که چه بلایی سرش بله این عاقبت مسخره کردن به پیامبران خدا و مسخره کردن به دین خدا اجل حالا در بحث خود همین ابن نبی ما مسئله ادامه داره یعنی بحث ابو سفیان هم هست و آیاتی هم نازل میشه در همین که من فکر میتونم که قصه ها رو خلاصه بکنم از جمله مسائلی که هست از اذیت هایی که میشد الله صلی الله علیه و سلم مسخره به خود قرآن بود جاهایی مسخره به خدا میشدید جایی مسخره به قران خدا وقتی که رسول الله میره کنار کعبه می نشسته قران و طلبات تا مشرکین بنشن از این قران و خودشونم اقرار میکردن که این سخنها سخن سرسری و سخنه نمیدونم حرکتی کسی نیت شعرم نیت اقرار باشتن میومدن مخیانه می و در همون بسه تشویش ایجاد میکردن حرفی سخنی میفروندن فوشی میدادن جلس رو به هم میدنن و تمرکز از تمرکز مردم میگرشتن وقتی که خداوند چنین چیزی را چنین عقل عملی از اونها می‌بینه، چنین آیاتی آیات نازل میشه. ولا تجرب که، ولا تخافك بها بها و كذا بين ذلك السبيله. میگه که صدات خیلی بالا ببر، نه صدات پایین بیار. ابو جهل علنا میاد با این قرآن مبارزه می‌کنه. میاد بالا در ابتدای امرش صاي میکنه که بگه تو مثلا این که محمد محمد وجهه من بين بین نعم فقال والعز يفعل ذلك لا على وجهه محمد میگه اگر دیدن که ترش پا این گذاشته سرش رو در همون خاکا به همون خاکا می میگه اومد آلا این ادعا کرده و اومده جلو کعبه رسول صل الله صلی اللہ علیه و سلم دارن نمازشون رو سرش رو به سجود افکندن سجود کردن همی که سر به سجود گذاشتن ابو جهد با کبر با اون کبر اون سینه که یلا به قول خودش سفر کرده و به قول خودش مردی بکنه میخواد جلو. همین که میاد جلو جلو به خودش یک گودالی را پر از آتش میبینه. در بعض این میاد که یک اجدهایی را میبینه که لبش را هم باز کرده. عقب عقب همینطور میاد به پشت تا این که منطلب میشه از اون کاری که میخواست بکنه. خودش میگه "ان بینی و بینه لخنده من نار و حولن و اجنحه. چیزهایی را میبینن وحشد نار؟ غیر ان گفت مش و اندودان را با بالو نمی دیدن ما اجتهاد ها دیگه الله صلی الله علیه و سلام فرمودند لودنا منی لحتصفت الملائکه عضوا عضوا اگر نزدیک من میشود فرشتگان عضو هاش را تیت تیت میدادند یک فرش ترس در میوردن میوردن درسی بشه برای همه اونها. كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى إن إلى ربك الرجعة أرأيت الذي ينهى فقد إذا تصل يقول ديدي ونشحن كلا بأنني نماذ بيخن مئة جلوب النماذ بأنني رو بيقرب كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن وتولى شيزا رسول الله ما قال إنتي دين الخدو رب تزينا أجم نفسها بضم تسيبنا من معاياتنا میگه روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن نماز میخوندن. گفتن با خودشون که ما بیام گرداغر رسول الله صلی الله علیه و سلم یک گردی بزنیم تا حسابش بردیم. الان اصل قصه قصه خیلی طولانی هست. این ابن عبی با کمال قواهر میاد کراهنش رو از پشت میخواد گردن رسول الله رو گرفته با اون پارچه میخواد رسول الله صلی الله علیه و سلم خفه بکنه. این آیات نازل میشه. اتقتلون رجلاً، ان یکون ربی الله. و قد جاکن بالینات من ربکم. اتقتلون رجلاً. میخوای شک ربطشی؟ که میگه پروردگارم خدا. و براتون دلیل و برهانم موجود مدرک وجود. غیر این معجزات، این قرآن. دلیل و مدرک عقلی رو بگیر برهان هایی نمیدنم حسی را بگیر. این همه چیزها رو میبینید بازم میخواد این شخص بکشید میگه کی از رده ما؟ این قسیه ابن ابی و حالا جزاش که دید از جمله قسیه ها قصه معاملت و جمع شدن قریش برای کشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب سوال امروز باشه. اومدن قریش جمع شدن و به خودشون گفتن محمد را وقتی که میاد کنار قبر پیرو میذنه. هرمن کوتاکش میذنه تا اینکه که اسفاد بیاد و بمیره. این تصرا عبدالله بن عباس نقل کرده. قص این قاضی به گوش فاطمه رضی الله عنها بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه فاقبلت فاطمه تبکی حتى دخلت على ابيها امدن تو اینکه ورجدان نزد پدرش گفت هؤلاء الملا من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قدر رأوك قاموا إليك فا قتلوك يقول إنها در الحجر إثمال جمع شدن كأجر بلند شدين نماز يا أو دعمت ددي بسي توحيد بلند بشن وهمت رأس طدر بيارن فليس منهم رجل إلا قد عرف نسبهم من دمك خونتو در ميون إنها قم بشه رسال الله صلى الله عليه وسلم شنين بفن يا ابنية أدنى وضوعاً یک وزوی آب و وزو بیاری تا من وزوی بگیرم فاطمه آب میاد رسول الله وزوی و بعد وارد مسجد میشن وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم ورد مرسید میتوقع داریم الان فاطمه میبید که اونها با هم نشستن میخون تو را بگوشن دست دست هم دیگر گذاشتم که کتکش بزن و سرش بریزن و از بادرش بیارن رسول الله در میاد توی سکتنها میاد جلوی چشم آنها میاد در وسط مسجد که نماز بکنه و دعا وقت در وسط جمع میاد میگه وقتی که وارد المسجد شو وارد المسجد شوشه تم دخل علیه والمسجد فلما رأوه قالوا هذا هو فخفضوا ابصارهم وقتی که رسول صل الله صلی الله علیه و آله وارد المسجد شدن کاراشون پایین اند افتن و چشماشون پایین اند راء فی مجلسه فلم يرفع الیه ابصارهم و لم يقوم منهم رجل هیچ کدوم از اینها هم بلند نشدن يقول فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على روثهم فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها وقال شاهد الوجوه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمدت جلوهشن رئبتادت خاك ربار داشتن اذن خاكها و بترفينا خاشيدن يقول إنهايك اذ اين خاك خاك رسول الله اینها تمامی اینها در جنگ برد کشته شدند، طلاق شدند. اینهایی ای که 70 نفر یا یا کمتر از 80 نفر که دست در دست هم گذاشته بودند تا اینکه به رسول الله را بکشند. همه اینها در جنگ برد کشته میشند این خلاصه بحث آزار و اذیتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دید. چه این آزارها فقط باصفن بود. فقط با اذیت بود، با سنگ کردن بود. آزار به حدی رفیده بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماین روز گذشته و ما چیزی در دهان ما نرفت. سی روز من و بلان چیزی در دهان ما فرو نرفتد. اینقدر اذیت دیدن. به خاطر چی اینقدر دیدن؟ غم ما را داشتن. اول زندگی، اول دعوت، غم امت و آخر دعوت هم غم امت. می‌خواد مردم را نجات بده. می‌خواد مردم را به اون چیزی فرا بخونه که پیامبران امت را فرا خواندند. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واشتركوا. تمامی پیامبران را فرستادیم تا مردم را به سوی من دعوت بدن و به عبادت من فرا بخوانند. با گطاقود و, و مردم را از تاقود از هرچی که انسان را از خدا دور میکنه دور بکنند این پیانبران از انسانها میخواند. سر، راستی، سره رحم غیر از اینها رسول الله و سلم میگفتن این دین, دین،, دین امبیار، این دعوت امبیار چیزی بدی میگفت، چیزی بدی به اونها نمیگفت چرا ما بد میاد؟ بد میاد که کسی به بگه باد خدا پرست باشی. وادت خودا بتنسی اون کسی که خود تورا خلقت کرده أن کسی گفته عمر خلق الجن و الانسان الا الله صلی الله عليه و سلام در اخر زندگیش روی پای عایشه است تابش بالاست غم امته شده این توحید رو و این خداشو مبارزه قائل نشه این همه ازیا تحمل میکنن از این از اول دعوتش این آسیب ها تحمل چرا تا اینکه ما بیام خدا پرست باشیم بیام سری صفه نماز بخونیم حق خدا را بشناشیم خدامون رو بشناشیم از خدا دور نباشیم از خدامون بترسیم چون ترس از خدا آمد دیگه درستی میشه دیگه دروغی از بین میره دیگه خیانت از بین میره دزدی از بین میره رباخاری از بین میره حق بفخیر میره امن و امنیات میاد کسی کسی دیگر رو نمیکوشه زنا نمیاد خدامند انسان ها خدا رو شناختن دیگه مشکلی ندارن با خودشون. بزرگ مشکل مشکل ما با خدا خداونده این مشکل حل شد دیگر مشکل ها حل میشه دیگه مشکلی نیست که باشه بین ما ها سرش گذاشتن الله روی پای آیشه طبش بالا آیشه هم میبیاده من کسی ندیدم که چیلین طبی داشته باشه گفتن یا رسول الله بخاطر اینی که عجل شما دوباره یعنی بخاطر این که شما اجر دوباره بر اومد دارید بخاطر همین این خط آری. بیا و صالحین همچنان خاطر عجلی که بسیار دارن مصیبتاشون هم چندانه و چند درابره میگه پاهم میزید این فکتب بالا بود آب بغلستش هست واسه بغلدستش هست آبو میپاشه نبید صورت خودش دعا میکنن اللهم اجعل تجعل قبری وزنن یعبدون من دون الله ای خدا من. قبر من را بارده قرار نده که پرسیده بشه کسی من را نفرسته دعا میکنن و لعنت می کنند و نفری می برسند در کسانی که روی قبرها مسجد بنا بکنند. حدیث دربه. در این احادی زرفه بخاری و مسئله. لعن الله اليهود والنسار اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. خودا لعنت بکنند. یهود و نسارا که قبر پیانبرانشو به مسجد قرار دادند. اول دعوت این همه آسیم آخر دعوتا بازم غم آینده رو دارد. غم مباد وقاتشو دارد. که امت دیگه منحرف نشد. قدر این دینمون این قصه را این مسائل را ما داریم ذکر میکنیم که قدر این دینو بدونیم قدر این مسئله رو قدر این نماد رو قدر خدا مون بدونیم بدونیم که خدا چقدر ارزش داره چون این ارزش اگه ما فهمیم، تحمیدی و شناختیم دیگه غم های دنیا برایمون آسوم میشه زیرا یکی ای از ذرافثی که در این قصه‌ی ای ازیت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که میگه که رسول الله حدیث در ثونه نداره میگه اگر مصیبتی بهتون وارد شد فتذکره رو به مصیبتی فا اینه اعظم نسان میگه بیاد مصیبت من باشید مصیبت فراق من اگر کسی موت فوت کرد هر مصیبتی که بهتون پیش بیاد مصیبت فراق من باشید بیاد اگر دردی گشیدید اگر شکنجهی دیدید بیاد این باشید که رسول چقدر شکنجه دیدن چقدر زجد دیدن بخش بخشه وقتفر فش خوش می‌دیدند رسول الله و رسول الله خوشحال می‌شدند این درس هایی های هست که ما باید از این صحابه بگیریم